خانش توسط بنفشه این داستان آینه سهرامی در یکی از روستاهای ژاپن مردی به نام سابورو با زن و دخترش زندگی می‌کرد او یه مرد ساده دل و زحمتکش بود روزها توی مزرعه و از غروب به بعد توی خونه ساپونش کار میکرد. با این همه کار و تلاش اصلا نمیتونست زندگی خود و زن و فرزندش رو اداره کنه. به طوری که حتی مجبور میشد از مقدار غذای روزانه مورد نیازشونم کم کنه. اون مرد بینوا از اون و خیلی ناراحت بود. یه روز شنید که در کوه نزدیک خونهشون یه معبدی هست که آرزوها رو برآورده میکنه تصمیم گرفت بره اونجا و برای سعادت و سلامتی خونوادهاش و بهتر شدن وعض زندگی خودش اونقدر دعا کنه تا نتیجه بگیره رفت به کوهستان و شب و روز به عبادت پرداخت در روز فقط یه بار از جاش بلند میشد تا بره میوه و سبزیجات کوهستانی رو بخوره و رفع گرسنگی کنه. ده روز گذشت ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. زن و فرزندش نگران شدند و به جستجوش رفتند. همه جا سر زدند. سرانجام اونو توی کوهستان پیدا کردند. ازش خواهش کردند که به خونه برگرده. بهش گفتن که تا حد مرگ گرسنه هستند. صابورو گفت تا خدا رو نبینم به خونه بر نمی گردم. اون همینطور توی اون عبادتگاه به عبادت کردن ادامه میداد. هفتهها هفته ها گذشت و اون همینطور دعا میخوند. همسرش و دخترش گاهی بهش سر میزدند و تشویقش میکردن که برگرده خونه و عبادت و بینتیجه رو دست برداره. اما موفق نمیشدم. یه شب محتابی سوبارو به خواب رفت. توی خواب دید که یه دفعه از یه طرف یه دودی به هوا رفت و الهه بخشش ظاهر شد او خیلی آروم و مهربون بود اومد به طرف سابورو و یه آینه بهش داد سابورو با تعجب به اون آینه نگاه کرد و اون موقع نمیدونست چیه الهه بهش گفت این آینه شخصیت اصلی مردم رو آشکار میکنه. اونو همیشه با خودت داشته باش. بهت کمک میکنه الهه بعد از گفتن این حرفا ناپدید شد سابور و سرگشته و حیرون از خوابی که دیده بود بیدار شد ولی دید یه آینه شکسته شکست کنارشه اونو برداشت و آخرین دواش رو خوند و به خونش برگشت وقتی وارد خونه شد دید زن و دخترش دارند برنج میکوبن قبل از اینکه متوجه بشن، اون آینه رو از جیبش بیرون آورد و به طرف اون دوتا آینه رو گرفت دید دوتا مرغن. با خودش گفت شاید زن و بچهٔ من اصلا مرغ بودن و به شکل انسان ظاهر شدن اولش از دونستن این واقعیت ناراحت شد و باهاشون احساس بیگانگی کرد بعد بدون اینکه خودش رو بهشون نشون بده از خونه رفت همانطور که گیج و سرگردون به این طرف و اون طرف قدم میزد، با خودش فکر کرد چطور ممکنه چنین چیزی واقعیت داشته باشه؟ کم کم احساس خستگی کرد و چون مدتها بود غذای خوبی نخورده بود رفت به یه رستوران تا خودش رو سیر کنه پشت یه میز نشست و به دقت به اطرافش نگاه کرد پیش خدمت رو دید که دوون دوون این طرف و اون طرف میرفت و از مشتریا پذیرایی کرد. همین که پیش خدمت اومد کنار صابورو اون آینه رو به طرفش گرفت و به جای پیش خدمت یه شغال رو دید سابورو بهش خیره شد و با خودش فکر کرد جوونی به این خوش هیکلی و خوش قیافهی چطور میتونه شغال باشه پیش خدمت از نگاه سابورو ناراحت شد پرسید موضوع چیه؟ سابرو به خودش اومد و گفت هیچی هیچی نیست برو برو شغال به کارات برس پیش خدمت گفت چی گفتی؟ تو به من گفتی شغال؟ بعد دعواشون شد صاحب رستوران جلو اومد و از پیشخدمت پرسید چه خبره تو نباد با مشتریات دعوا کنی اگه مسئله هست باید به من بگی اون از صابورو عذرخواهی کرد و پیش خدمت که خیلی ناراحت شده بود به حرفای رئیسش توجهی نکرد و داد و بیداد کرد و گفت این مرد بیدلیل به من توهین میکنه بهم میگه شغال صابورو با خودش فکر کرد او خدای من راستی چرا من خودم و تا حالا توی آینه نگاه نکردم تا ببینم چی هستم پسر خودم و ببینم ببینم چه شکلیم او آینه رو بیرون آورد و در حالی که به خودش نگاه می کرد، از صاحب رستوران خواست که توی اون آینه نگاه کنه و بهش بگه که اون چه شکلیه. مرد صاحب رستوران در کمال تعجب نشانه شانس و خوشبختی رو توی اون آینه دید. فوراً به سابو رو تعظیم کرد و موضوع رو ازش پرسید. سابو رو همه چی رو برای مرد رستوراندار تعریف کرد. صاحب رستوران دیگه اجازه نداد سابورو از اونجا بره چون نشونه خوشبختی باهاش بود. از اون به بعد او اونجا موند و کارش نگاه کردن به آینه و تعیین کردن شخصیت اصلی مردمی شد که می اومدن به رستوران. از اون به بعد رستوران پر از مشتری شد و سابورو هم پول خوبی به دست آورد و البته هم هرگز فراموش نکرد که از اون پول به طور مرتب برای زن و بچهش بفرسته. کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای های افسان ای نشانی کانال تلگرامی، T نقط می/مهران دوستی. T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 .blackfall.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی